سعدی بعد از شنیدن شرح ماجراها به من گفت من هیچ خودم از این وقایی را باور نمی کنم. ولی در هر حال خوشحالم که عاقبت خوب و سعادتمندی پیدا کردی و این همون است که برای تو آرزو داشتم اما این خوشبختی بر اثر من شدن از آن سکه های است که در دو وقت ما به تو دادیم وقتی شب فرارسید رسید و آنها خواستند با من خداحافظی کنند و به خانه های خود برگردند از ایشان خواهش کردم که شام را میهمان من باشند و شب را در خانه من بگذرانند تا فردا صبح آنها را به خانه یه خود که نقطه خوش آب و هوایی است راه نمایید کنم و بعد از آنجا با عصد دوباره به شرط مراجعت کنیم در این منطقه به خاطر هوای پاکیزه و طبیعت زیبا خانه بزرگ و وسیعی بنا کرده بودم در مقابل درخواست من فعری گفت: من دعوت تو را میپذیرم ولی نمیدانم سعد هم میتواند یا خیر. سعد هم گفت من فردا کار مهمی ندارم آن وقت یکی از غلامان خود را به خانه های آنها فرستادم تا به همسران آنها بگوید که شب را در خانه من خواهند گذراند و منتظر آنها نباشند در این فاصله دستور دادم تا تدارک لازم برای شام داده شود وقتی که بساط شام گسترده شد من تمام قصر و تالارها و اتاقهای کار خود را که بسیار بزرگ و مجلل بود از این را مرد نیکو کار زیرا بدون ورود سعدی و سعد و آنطاکی سرد من صاحب این ثروت عظیم نمی شدم. سپس هر دو را به تالار پذیرایی برگرداندم و در آنجا به پرسش های آنها درباره موقعیت و نحوه کارم پاسخهای کافی در اختیارشان گذاشتم خود به من خبر دادند آماده پذیرایی شام هستند و غذاهای گوناگون بر سر صفت جای داده بودند و نوازندگان هم نقمه دلپذیر و شاد می و آهنگ موسیقی در همه جا به گوش می رسید بعد از شام رقصندگان زیبا با هنر خود وسایر سرگرمی ها ما را مشغول و شاد میساختند. صبح روز بعد هنگام طلوع آفتاب برای هواخوری و گردش در کنار رودخانه قایق تفریحی زیبایی که در انتظار ما بود سوار شدیم و شش پاروزن نیرومند قایق را هدایت می و در مدت کمتر از یک ساعت و نیم به امارت یعلاقی رسیدیم وقتی مقابل بنای یعلاقی رسیدیم دو دوست صمیمی به تماشای زیبایی های طبیعی اطراف قصد ییلاقی پرداختند و از موقعیت محلی و آینده آن که بسیار دلپذیر بود تعریف می کردند. سپس آن را به داخل بنای اصلی و تالارها و سپس به حیات ها و صافتمان هایی وابسته به آن بردم پس از آن سعد و سعدی را به باغ مخصوص مرکبات راهنمایی کردم تمام شاقه از پرباری خم شده بودند خصوصا درختان لیمو و پرتقال که انباشت از میوه بودند و نهر آبی از زیر آنها میگذشت و آنها را آبیاری میکرد گردش کردند و لذت فراوان بردند زمزمه ملایم رودخانه وسایه درختان و هوای خوشبویی که از عطر گل‌های ایلاقی تنفس میشد. و لقمه شادی بخش پرندگان سعدی و سعد را در حالت خوش و مستانه فرو برده بود و به خاطر اینکه آنها را به این نقطه خوشاب و هوا آورده بودم سپاسگزاری فراوان کردند. سپس سعدی و سعد را به انتهای باغ که درختان کهن و سطبی آنجا را به صورت بیشه زیبایی درآورده بود بردم و بعد هم به عمارتی که از چهار طرف باز و بدون دیوار بود و درختان نخل با سایه خود بر زیبایی آنجا افزوده بود رفتیم و مدتی به استراحت پرداختیم فرزندان من که به سر بچه کوچک و زیر سرپرستی مربی خود به گردش در بیشه آمده بودند مشغول تماشای لانه پرندگان بودند بعد از مدتی کوتاه به سر بزرگم صدا زد بابا بابا در اینجا پرنده ها در درون یک دستار لانه ساخته اند من بی اختیار به سوی آنها رفتم و دوستان نیکوکار من هم به دنبال من آمدند وقتی پی بردم که آن دستار همان است که زغن از زمین به منقار گرفت و به هوا پرواز کرد بسیار حیرت کردم سعدی و سعد به دستار نگاه می کردند من جوده های پرنده را از آن بیرون آوردم و به بچه های خود دادم دستار کاملا کنه بود و به خوبی نشان بیداد که از همان زمانی که زغن آن را از من را بوده تا کنون در آنجا افتاده و هیچ کس به آن دست نزده است سپس آن را شکافتم و بسته یه پارچه ای را که در آن پنهان کرده بودم بیرون آوردم حس کردم سنگین است بعد سر آن را گشودم و یک و سکه یه طلا از آن خارج ساختم و به سعدی گفتم آیا این دلیل کافی است که شما باور کنید من راست می گفتم سعدی پاسخ داد آری قبول میکنم که ادعای شما واقعیت داشته است اما در مورد مبادله خمره سبوس با ماسه هنوز نمیتوانم صحتش را قبول کنم و تصور میکنم ثروت کنونی و رفاه زندگی شما در نتیجه بهرهگیری از های طلای بار دوم است که به شما دادم سعد شروع به مباحثه با سعدی کرد من به سعد گفتم بزار تا سعدی هر طور که دلش میخواهد درباره من قضاوت کنم من می‌دانم و خدای خودم که آنچه گفته‌ام راست بوده است آنگاه من دو را به حال خود گذاشتم و به سراغ خدمتکاران و باغبان رفتم و درباره‌ی باغ و ایلاق و احتیاجات آنها به گفتگو پرداختم و های مختلف می‌کردیم قبل از غروب آفتاب سعدی و سعد از تالار به صحن باغ آمدند تا از هوای خنک غروب لذت ببرند رفترفته خورشید غروب می‌کرد و ماه در آسمان نمایان میشد. ما سوار از پایمان شدیم که به سوی بغداد دست شویم. در همین لحظه یکی از غلامان دنبال ما و مرا صدا زد. وقتی نزدیک آمد گفت چون در انبارها جو برای خوراک چهارپایان نداشتیم و سبوس هم نداشتیم، من رفتم و یک خمره خریدم و به استب بردم و قرار شد فردا خمره خالی را تحویل دهم. اما همین که سبوزها را خالی کردیم، این بسته هم از ته خمره بیرون افتاد و آن را نزد شما آوردم. من دقت کردم و فهمیدم همان بسته سکه های تلاس که من به این ترتیب در درون خمره سبوس پنهان کرده بودم بلافاصله سکه‌ها را درآوردم و به سادی گفتم خداوند از عالم غیب شاهد برای صحت سخنان من می‌فرستد آیا حالا حرف مرا باور می‌کنید سادی فورا گفت حق با توست و از گستاخی خود پوزش می‌خواهم آنگاه به سعد گفت پس ثابت کردید نظریه تو درست بوده است که پول و کاردانی به تنهایی نمیتواند. همیشه سبب ثروتمند شدن آدمی گردد و حوادث و اتفاقات حساب نشده را هم با جزء عوامل مسبب در نظر گرفت در به سعدی گفتم من بر اثر یک اتفاق ثروتمند شدم و با وجودی که می دانم سکه های را که به من دادی قصد نداشته ای که آن را به تو برگردانم اما چون نمیخوام شخصا از آن استفاده کنم اگر موافق باشی فردا آن را به شخص توهی دستی بدهیم و خداوند به این ترتیب از همه ما خشنود خواهد شد. سعدی هم موافقت خود را اعلام داشت. خلیفه هارون رشید که سرگذشت من را با دقت گوش کرده بود، گفت: "حسن، مدت‌ها بود چنین سرگذشتی نشنیده بودم. اما باید بگویم الماسی را که تو فروختی، اینک در خزانه من است و یکی از گرانبهاترین جواهرات سلطنتی است." و دلم میخواهد که سعدی و سعد را نزد خزاندار من ببری تا آن الماس قیمتی را ببینند و از هر گونه ناباوری رهایی یابند و بدانند که پول به تنهایی نمیتواند در کوتاه مدت سغیری را به ثروت زیاد برساند بلکه رنج و زحمت هم باید همراهش باشد من به خزاندار سلطنتی سفارش خواهم کرد که سرگذشت تو را به رشته درآورد تحریر در و با همان الماس جلس کتب سلطنتی در کتابخانه نگهداری نگه داری کند سپس خلیفه به من و بابا عبدالله و سعید نعمان اجازه مرخصی داد و با سجده و بوسیدن زمین از حضور خلیفه بیرون آمدیم داستان علی بابا و چهل دوست در زمان قدیم در یکی از شهرهای ایران دو برادر زندگی می که نام یکی از آنها کازم و نام دیگری علی بابا بود. پدر آنها هنگام مرگ توهی دست بود و برای دو فرزند خود مالی به ارث نگذاشت. کازم با دختر سبتمندی ازدواج کرد که املاک بسیار داشت و بعد از مرگ پدر زن دارایی فراوانی به همسرش رسید و زندگی آسوده ای را می گذراندند. علی بابا با دختری ازدواج کرد که از مال دنیا کاملا بی بود و علی بابا بود از صبح تا شام به جنگل برود. و با قطع درختان هیزمی تهیه کند و بار سه علاقه خود کرده و برای فروش به شهر او برد و زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند روزی که مقداری هیزم در جنگل تهیه کرده بود و میخواست به علاقهای خود بار کند متوجه شد از دور گرد خاکی برخاست که به سوی او نزدیک می شود خوب که دقت کرد متوجه شد گروهی اسب سوارند و چون نزدیک تر رسیدند از لباس و سلاح آنها دانست، راهزنانی هستند که به سوی کوهی در حرکتند. علی بابا از این منظره ترسید و خود را در لابلای شاخه های درخت پنهان کرد و آنها را تماشا کرد. آنکه که بیش آنها اسب میتاخت و سرکرده آنها بود، در زیر همان درخت فرمان ایست داد. علی بابا آنها را شماره کرد چهل تن بودند، و هر کدامشان خرجین بزرگی به گردن خود آویخته بودند و معلوم بود که جواهرات و اشیاء قیمتی مردم است که راهزنان آن را رو بودند. وقتی به زیر درختی که علی بابا در میان شاخ و برگ آن خود را پنهان کرده بود رسیدند سرکرده راهزنان اشاره به کوه مقابل کرد و گفت ای کوه باز شو کوه بلا فاصله باز شد و همه راهزنان دنبال سرکرده خود داخل شدند و دوباره کوه به هم آمد. بعد از مدتی دوباره کوه باز شد و همان اده از آن خارج شدند علی بابا میخواست بلافاصله به همان ترتیب به درون کوه رود. و از این راز آگاه شود که در درون این کوه چه میگذرد اما سفرد و بعد از مدتی از درخت پایین آمد و جلوی کوه ایستاد و گفت ای کوه باز شد کوه فرن باز شد و علی بابا پا به درون آن گذاشت و بلافاصله دهانه کوه بسته شد علی بابا مهند وسیعی را دید که ممنوع از جواهرات و طلا و نقره و اشیاء قیمتی است. به نظر می از زمانهای قدیم اجداد راهزنان آنچه دوزیده اند در اینجا جای داده بودند. علی بابا از دیدن این همه جواهرات حیرت کرده بود. این گار از زمین تا سقف انباشته از جواهر بود. او دوباره دستور داد، گار باز شد و اولاقای خود را به درون گار آورد. و سه خورجین روی آنها را ممنوع از تلو و نقره کرد سپس با بیان همان جمله قار از هم باز شد و علی بابا اولاخای خود را به خارج از قار هدایت کرد و راه خانه پیش گرفت و روی خرجین ها را از شاخ و برگ درختان پوشانید وقتی علی بابا به خانه رسید خرجین ها را به درون خانه برد و در خانه را محکم برد و خرجین ها را در برابر همسر خود که در اتاق نشسته بود و همسر علی بابا دهانه خرجین را گشود و از دیدن آن همه طلا و نقره و جواهر حیرت کرد و گفت علی بابا اینها را از کجا دوزدیده ای؟ علی بابا پاسخ داد اینها را ندوزدیدم. اینها را از چنگ راهزنان زنان را که این عمل را دوزدی نمی نامند. زود باش آنها را وزن کنیم و در زیر زمین پنها نماییم. همسر علی بابا به سراغ زن کازم که در همسایگی آنها زندگی میکرد رفت. تا ترازوی آنها را به امانت بگیرد و در این فاصله هم علی بابا شروع به کندن زمین خانه کرد همسر کازم قبل از آنکه ترازو را در اختیار همسر علی بابا قرار دهد به طور پنهانی مقداری ماده چسبنده در سطح کف ترازو مالید تا بعداً بفهمد چه چیزی را با آن وزن کردند همینکه که همسر علی بابا وزن کردن طلاها و نقره ها را پایان داد فوراً ترازو را نزد همسر کازم برگرداند قافل از آنکه یک تکه تلا در کفه ترازو چسبیده است همسر کازم که با این تدبیر متوجه شده بود علی بابا ترازو را برای وزن کردن طلا خواسته است حسادتش از برانگیخته شد و با خود گفت این حق باز از کجا و چگونه این همه طلا به و دست داود است که به شمردن مردن حالا آنها را وزن می کند بی صبری در انتظار بازگشت کازم از دکان بود همینکه که خازم از دکان می برگشت همسر او از کازم پرسید آیا میدانیم برادر تو به مراتب از تو ثروتمندتر است؟ او آنقدر ثروت دارد که خود را با ترازو وزن کند بعد تلای موجود در کفه ترازو را به شوهرش نشان داد و شرح امانت گرفتن ترازو را توسط زن علی بابا برای کازم تعریف کرد جالبتر از همه آنکه سکه یه طلا به قدیمی بود که معلوم نبود در زمان سلطنت کدام پادشاه آن را ساختند. وقتی کازم از موضوع آگاه شد، به جای آنکه از خوشبختی و آسایش برادر خوشحال شود، حسادتش برانگیخته شد و پیش از طلو آفتاب به خانه علی بابا رفت. این دو برادر که بعد از ازدواج با یکدیگر رفت و آمدی نداشتند. وقتی کازم علی بابا را دید، به او گفت: تو مدت‌هاست که با ما کاری نداری. و خود را کنار کشیده ای و معلوم نیست به چه کاری مشغولی خود را امتحیده است معرفی می کنی در حالی که تلاها و سکه های خود را با ترازو وزم می کنی و آنقدر زیاد است که قادر به شماره کردن آن نیستی علی بابا گفت منظورت را نمی فهمم کازم گفت توضیح بده و خود را به نفهمی نزن آنگاه سکه طلایی را که همسرش به او داده بود به علی بابا نشان داد و پرسید چه تعداد از این سکه ها داری که نمی‌توانی آن را شماره کنید؟ زن من دیروز این سکه را در کفه ترازوی که به همسر تا اما نداده بود یافته است. علی بابا متوجه شد بر اثر همسرش کازم به راز او پی انکار را جایز ندید و آنچه را دیده و شنیده بود و درباره وجود گنج نهفته در دل و رمز گشوده شدن فار را برای کازم بازگوه کرد قازم اونقدر خوشحال شد که طاقت سب نداشت و از نزده علی بابا به خانه خود رفت فردا صبح خیلی زود با هشت رست قاطر و هشت خرجین به سوی محلی که علی بابا نشانی داده بود رفت وقتی قازم مقابل قار رسید گفت ای کوه راه بده که من وارد شوم دهانه قار گشوده شد و قازم هشت رست قاطرهایش را به درون قار هدایت کرد به هم دهانه قار بسته شد کازم از دیدن تپه های طلاوننا به محخود شد و برای او باوق کردنی نبود که گنجیم این فراوانی در دنیا وجود دارد. به هر حال با شتاب تمام به انباشتن انگشتنخوررجینها پرداخت و آنها را لبریز از طلا و نقره کرد و آنقدر هیجان زده شده بود که وقتی میخواست از قار خارج شود عبارت رمز را فراموش کرد و عبارت گوناگونی ادا کرد که دهانه غار گشوده نشد. کازم دچار تشویش و سردرگمی شده بود. نمیدانست چگونه خود را از این گنجینه که برای او به صورت زندان تاریک در بود رهایی دهد در این جان فرسا دیگر به طلا و نقره و جواهرات توجهی نداشت و آرزوی او فقط آزادی و رهایی از این زندان بود حدود نیم شب بود که کازم صدای سم اسپا را در گوش شنید و فهمید که راهزنان مراجعت کردند راهزنان وقتی به نزدیکی قار رسیدند چندین قاتل را در اطراف دیدند که روی آنها صندوق و زنگیل بسته شده است. آنگاه در قار را به که همان عبارت مخصوص خودشان گشودند و داخل شدند. نخستین نفر آنها سرکرده آنها بود که کازم او را به گوشه هل داد و از دهانه قار بیرون جست. ولی بلافاصله راه زنانی دیگر با شمشیرهای کشیده مانع فرار او شدند و با زخم شمشیر او را از پای درآوردند. و پیکر بیجان جان کازم را چهار قطعه کردند و از دو سمت در درون قار به دیوار آویفتند تا اگر احیانا کسی به درون قار دست یا بد، با دیدن این پیکر چهار تکه شده از دست برد به تلاها خودداری ورزد و بداند که چنین مجازاتی در انتظار او خواهد بود راهزنان با یکدیگر تبادل نظر می کردن که چگونه این شخص توانسته به درون قار راه یابد اول متوجه روزنه بالای سقف بودند که نور از آنجا درون غار را روشن می کند. بعد متوجه شدند ارتفاع و وضع سقف ها به نحوی است که کسی از آن روزنه نمی به درون غار بیاید سرانجام نتوانستند این معما را حل کنند و دوباره از غار بیرون آمدند و بر از پا سوار شدند و به سوی بیابان برای چاپیدن اموال کاروانیان تاختند همسر کازم تا نیمه های شب در انتظار بازگشت شوهر خود بود بچان صبح شد و از کازم خبری نرسید. سراسیم سراغ علی بابا رفت و ماجرا را با او در میان گذاشت. علی بابا نگران شد و گفت تنها راه آن است که من به غار بروم و خبری بیاورم. او سه اولاغ خود را به سوی محل غار به حرکت در و بعد از مدتی به نزدیکی غار رسید. در جلوی در ورودی غار خون روی زمین دیده که علی بابا آن را علامتی بدی دانست و وقتی وارد قار شد پیکر بیجان جان کازم را دید که چهار قطعه شده و به دیوار قار آویختند نخست قطعات پیکر برادر را در درون دو خرجین جای داد و روی آن را با علف و برقای درخت پشانید و خرجین های دو علاق دیگر را از طلا امباش و از قار خارج شد و سوی خانه براه افتاد وقتی علی بابا به جلوی خانه کازم رسید، چکوش در را به صدا در آورد و مرجان کنیز کازم در خانه را گشود. علی بابا گفت، مرجانه، جنازه ارباب تو در اینجا خورجین است. باید آن را به خاک بسپاریم. متحا باید قول دهی که هیچکس از این راز آگاه نشود. ضمناً همسر برادرم را صدا بزن میخواهم او را ببینم. مرجانه قول داد و را به درون خانه رفت. و خانم خود را نزده علی بابا فرستاد. داد علی بابا ماجرای برادرش به دست راه زنان و همده جنازه او را با اولاخای خود برای همسر کازم تعریف کرد و به او سفارش کرد که مسلحت همگی در آن است که وانمود کنند کازم به مرگ طبیعی از دنیا رفته است همسر کازم گری افتاد و علی بابا به همسر برادرش گفت به خواست خداوند من سیوتمند شده ام و برای تسلیه شما حاضرم با شما ازدواج کنم و ثروت من هم به ثروت شما و برادرم اضافه گردد و از طرفی همسر من با این ازدواج موافقت دارد همسر خوزم فوراً از گریستن دست کشید و تسلی پیدا کرد و آثار خوشنودی در چهره‌اش نمایان گردید مجانه به دارو فروشی محل مراجعه و از دارو فروش درخواست کرد داروی بده که اربابم سخت بیمار است و غذا و آب نمی‌خورد. و درد شدیدی دارد دارو فروش حداری قرص مخصوص به او داد و گفت در دفعات آن را بخورد روز بعد دوباره مرجان به دارو فروش مراجعه و به او گفت حال اربابم بسیار وخیم است یک قصه آب هم از گرویش پایین نمی رود و غذا هم مطلقا نمیخورد. دارو فروش قرصهای دیگری به او داد روز بعد شیون ناگهانی همسر کازه و مرجانه بنا شد و همسایگان فهمیدند که کازم به درود زندگی گفته است. بعد جنازه او را به خاک سپردند و همه هم باور کردند که کازم به مرگ طبیعی از دنیا رفته. بعد از خاک سپاری خانواده کازم و علی بابا به سودباری نشستند. و سه روز همسایگان آشنایان بدیدن و تصدیت گفتن آمدند. به این ترتیب عطل کازم کاملا پنهان باقی ماند. چهار روز بعد از پایان مراسم سودباری، علی بابا خود خود شبانه به خانه کازم منتقل ساخت ولی های طلا و نقره را در همان خانه ی خود زیر خاک مدفون کرده بود و شب بعد هم مراسم ازدواج علی بابا با زن کازم انجام شد علی بابا دکان کازم را در اختیار فرزند بزرگتر کازم گذاشت و به او گفت اگر شایستگی از خود نشان دهد سرمایه قابلی در اختیار او میگذارد تا او هم ازدواج کند در اینجا علی بابا را به حال خود گذاشته و به سراغ 42 و رئیسان ها می رویم. راهزنان چند روز بعد وارد غار شدند و وقتی دیدند جنازه ی قتعه قتعه شده ی در غار نیست و مقداری از طلاها هم رو بوده شده بسیار تعجب کردند. رئیس راهزنان گفت کسی رو که ما به قجرساندیم از رمز ورود به غار آگاهی داشته که به اتفاق شریکی خود به این غار آمده است. و آن شریک می در نبودن ما به اینجا بیاید و بدون آنکه ما متوجه شویم به تدریج گنجی را که نیاکان ما در طول قرن ها روبرو شدن با خطرات بسیار برای ما فراهم کرده اند قارد کنند بنابراین ما باید اقدامات جدی برای جلوگیری از این خطر به عمل آوریم و آن شریک را به همین راهزنان فکر رئیس را تایید کردند سپس رئیس پیشنهاد کرد یک نفر داوطلب گردد که خود را با لباس مسافری تا زوارد به شهر رفته و در میان اهالی شهر به جستجو پرداخته تا به کسی که اخیرن کشته شده و پیکرش را قطع قطع کرده چه کسی بوده و خانه اش در کدام محله شهر است و نتیجه را به ما گزارش دهد اما چنان گزارش دروغی دهد مجازات او مرد خواهد بود یکی از راستانان از جای برخواست و آمادگی خود را اعلام داشت. رئیس راهزنان و سایرین او را تحسین کردند بعد از که این راهزن مورد تحسین همگی قرار گرفت از میان گروه راهزنان خارج شد و تغییر شکل داد به طوری که هیچ کس توانست او را بشناسد سپس به خیابانها رفت و اتفاقاً به دکان کوچک پینه دوزی رسید که همیشه باز بود و او را بابا مصطفی مینامیدند راهزن به شکلی مسافر تازه وارد به او سلام کرد و بابا مصطفی هم به او خوش آمد گفت و تا زباره پرسش های گناهونی مردم و شهر از بابا مصطفی کرد بابا مصطفی هم به آنها پاسخ داد تا آنجا که سکه طلایی در دست او گذاشت و پرسید از شدن شخصی که او را چهار تکی کرده اند خبر داری بابا مصطفی پاسخ داد اطلاعی که من دارم آن است که چند روز پیش کسی نزد من آمد و سکه طلایی به من داد و گفت لوازم دکت خود را بردار آنگاه چشمان مرا با پارچه بست و به ای برد و در آنجا من پیکر بیجانی را که چهار قسمت شده بود به هم دوختم و با سکی دیگری از طلا به من دادند و چشمانم را دوباره بستند و به دکانم برگرداندند مسافر تازه سکه دیگری به پینه دوز داد و گفت من هم چشمان تو را می بندم. تو سعی کن به حدود محلی که تو را بردند مرا راهنمایی کنی و به من بگویی اگر تبین کنی در آن محل هم سکه دیگری به تو خواهم داد سپس راهزن چشم های را با پارچهای بست و به راه افتادند تا نزدیکی خانه کازم رسیدند در آنجا دوز گفت مثل اینکه تا این مسافت راه آمدیم که بعد مرا به خانه بردند در آنجا راستن با گچ علامتی در روی در خانه گذاشت و سکه دیگری هم به پیندوز دوز پرداخت و چشمان او را باز کرد و بعد از سپاسگزاری او را به حال خود گذاشت و دنبال کار خود رفت. چند دست بعد مرجانی که برای انجام فرمانی به خیابان آمده بود، متوجه شد که روی در خانه آنها علامتی گذاشته شده است. از آنجا که زن زیرکی بود، پیش خود فکر کرد ممکن است این علامت سبب ناراحتی اهل خانه شود. بنابراین همان علامت را روی در شش خانه از هر طرف گذاشت و دنبال کار خود رفت. راهزنی که این علامت را برای مشخص کردن خانه کازم روی در بود، رئیس و کلیه راهزنان را به آنجا آورد تا خانه کازم را به آنها نشان دهد. اما وقتی به در خانه رسیدند، نتوانستند خانه مورد نظر را تشخیص دهند، زیرا سیزده خانه با آن علامت نمایان بود. رئیس راهزنان خشمین شد و به اتفاق گروه خود به غار برگشتند و راهزن مامور کشف خانه علی را بابا را زدند. تپسی که دیگر از راستانان دافتره به انجام مأموریت شد و نزد بابا مصطفی آمد و با شیوهی پیشین به کمک بابا مصطفی خانه علی بابا را یاد گرفت و با گشت قرمز روی در خانه علامت گذاشت. این بار هم مردانه متوجه علامت روی در خانه علی بابا گردید و همان علامت رو روی در خانه های اطراف کشید. راحتنی که در خانه علی بابا را علامت گذاشته بود با خوشمدی کامل به غار آمد و رئیس و همه راهزنان را مجد داد که این بار می تواند خانه علی بابا را با انها نشان دهد. رئیس و همه راهزنان با شدی راه افتادند و به نزدیکی خانه علی بابا آمدند. اما این بار هم با وضع گیج کنندهی روبرو شدند و نتوانستند خانه او را از طایر خانه ها فرق بگذارند. رئیس راهزنان بسیار خشمگین شد و به فرمان او همگی آنها به غار برگشتند و وراثن ناموفق در مأموریت را گردن زدند. آنگاه رئیس گفت اگر کار با این پیش شود همه شماها را باید از دست بدهم، بهتر است که خودم این کار را شخصا انجام دهم. سپس او نزد بابا مصطفی رفت و باز با همان شیوه دادن پول، طلا و بستن چشمه او خانه علی بابا را پیدا کرد و دقیقا مشخصات و محل خانه را به خاطر سپرد. و مطمئن شد که آن را با خانه دیگران اشتباه نخواهد کرد. بابا مصطفی را به حال خود گذاشت، هشت عدد خمره برای هشت راهزن موجود خریداری کرد و یک خمره هم اضافی خرید که آن را از روغن پر کرد و سوراخی هم برای جریان هوا در هر یک از خمره ها درست کرد و سر خمره را با پارچه زخیمی محکم بست و دیوار بیرونی خمره ها را هم با روغن چرک کرد و هر کدام از راه را در این خمره پنهان ساخت. و نوزده رأس هم قاتل خرید و روی هر کدام از آنها دو خمره جای داد و نزدیک خانه ی علی بابا آمد اتفاقاً علی بابا بعد از شام برای هواخوری در بینون خانه روی سکو نشسته بود رئیس راهزنان به عنوان بازرگان راغن فروش نزد علی بابا آمد و سلام کرد و گفت من از راه دور آمده ام تا فردا های خود را برای فروش به بازار عرضه کنم و جای را بلد نیستم اگر ممکن است و مزاحم نیستم، امشب را به من جای دهی تا فردا صبح دنبال کارم بروم. علی بابا رئیس راهزنان را در لباس بازرگان روغن فروش نشناخت و گفت مهمان حبیب خداست. بلا را صدا زد و به او گفت قاطرها را به اسکب ببر و بعد از آنکه که خمره ها را رو روی زمین گذاشتی، به قاطرها جو و علوفه بده. سپس علی بابا به مردان دستور داد، از چرب و نرمی برای این میکمانان تهیه کنند وقتی رئیس راستانان بارهای روغن را رو از روی قاطرها به زمین گذاشت میخواست تمام شب را در حیات به سر برد و مزاحم علی بابا نشود ولی در واقع قصد داشت به کمک نفرات خود که در خمره ها منتظر فرمان او بودند نقشه کشون به خود را برد